فصل نهم عیسی دوازده حواری را پیش خود خواند و با آنها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی بیوها شوند و بیماری ها را درمان نمایند. آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. به آنان فرمود: برای مسافرت هیچ چیز نبرید. نه چوب دستی، نه کول بار و نه نان و نه پول و هیچیک از شما نباید جامعه اضافی داشته باشد هرگاه شما را در خانه میپذیرند تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید اما کسانی که شما را نمیپذیرند وقتی شهرشان را ترک می کنید، برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید به این ترتیب آنها به راه افتادند و آبادی به آبادی میگشتند و در همه جا بشارت میدادند و بیماران را شفا می بخشیدن. در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد چون ادعی میگفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است ادعی نیز میگفتند که الیاس سحور کرده ادعی هم میگفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است اما هیرودیس گفت من که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنن، ولی این کیست که درباره او این چیزها را میشنوم و سعی میکرد او را ببیند وقتی رسولان برگشتند گزارش کارهایی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رساندند او آنان را برداشت و به شهری به نام بیت سیدا برد و نگذاش کس دیگری همراه ایشان برود اما مردم با خبر شدند و به دنبال او به راه افتادند ایشان را پذیرفت و برای ایشان درباره پادشاه خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد نزدیک غروب دوازده حواری پیش او آمدند و عرض کردند این مردم را مرخص فرما تا ها و كیسارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دور افتادهای هستیم او پاسخ داد شما خودتان با آنان غذا بدهید اما شاگردان گفتند ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم مگر اینکه خودمان برویم و برای همه این جماعت غذا بخریم آنان در حدود پنج هزار مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود، اینان را به دستهای پنجاه نفری بنشانید. شاگردان این کار را انجام دادن و همه را نشانیدن. بعد عیسی آن پنج نان و دوماهی ماهی را گرفت، چشم آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاس گذاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردن و سیر شدن و دوازده سبد از خورده های نان و ماهی جمع شد. یک روز وقتی عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می از آنان پرسید مردم مرا چی می جواب دادند: بعضی ها می تو یهیای تعمید دهندهی، ادهی می تو الیاس هستی، و هم میگویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است عیسی فرمود شما مرا چی میدانیت پتروس جواب داد مسیح خدا بعد با آنان دستور اکید داد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد لازم است که پسر انسان متحمل رنج سختی شود و مشایخ یهود، سران کاهنان و ملایان یهود او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. سپس به همه فرمود، اگر کسی بخواهد پیرو به من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روز صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای آدمی چه سودی دارد که تمام جهان را به دست بیاورد، اما جان خود را از دست بدهد یا به آن آسیب برساند. هر که از من و سخنان من آر داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید، از او آر خواهد داشت. یقین بدانید از کسانی که در اینجا ایستاده‌اند ادعی هستند که تا پادشاهی خدا را نبینند تعم مرگ را نخواهند چشید. ایسا تقریباً یک هفته بعد از این گفتگو پتروس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرش تغییر کرد. و لباسهایش از سفیدی می‌درخشید ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می‌کردند آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و درباره رحلت او یعنی آن که می بایست در اورشلیم به انجام رسد صحبت می‌کردند در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند اما وقتی بیدار شدند جلال او و آن دو مرغی را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می‌رفتند پتروس به او عرض کرد ای استاد چه خوب است که ما در اینجا هستیم سه سایبان بسازیم یکی برای تو یکی برای موسی و یکی هم برای الیاست پتروس بدون آنکه بفهمد چه می گوید این سخن را گفت هنوز حرفش تمام نشده بود که عبری آمد و بر آنان سایه افکند. و وقتی ابر آنان را فرا گرفت شاگردان ترسیدند. از عبر ندای آمد این از پسر من و برگزیده من به او گوش دهید. وقتی آن ندا به پایان رسید آنها ایسا را تنها دیدند. آن سه نفر سکوت کردند و در آن روزها از آنچه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. روز بعد، وقتی از کوه پایین می جمعیت زیادی در انتظار ایسا بود. ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد، ای استاد، از تو التماس می‌کنم به پسر من که تنها فرزند من است نظری بیاندازی. روحی او را می‌گیرد و ناگهان نعره میکشد کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به تشنج میافتد و با دشواری زیاد او را رها می کند. از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند اما نتوانستند عیسی پاسخ داد مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم پسرت را به اینجا بیاور اما قبل از آنکه پسر به نزد عیسی برسد دیو او را به زمین زد و به تشنج انداخت ایسا با پرخاش به روح ناپاک دستور داد، خارج شود، با آن پسر را شفا بخشید و به پدرش بازگردانود. همه مردم از بزرگی خدا مات و مپوت ماندن. در حالی که اموم مردم از تمام کارهای ایسا در حیرت بودند، ایسا به شاگردان فرمود، این سخن مرا به خاطر بسپارید. پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد، اما آنان نفهمیدن چه میگوید. مقصود عیسی به طوری برای آنان پوشیده بود که آن را نفهمیدن و میترسیدن آن را از او بپرسند. مباحثهی در میان آنان در گرفت که کی بین آنها از همه بزرگتر است؟ عیسی فهمید که در ذهنشان چه افکاری میگذرد. پس کودکی را گرفت و او را در کنار خود قرار داد، و به آنان فرمود، هر که این کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است، زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد. یوهننا عرض کرد، ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو دیوها را بیرون می کرد. اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع کار او شویم عیسی به او فرمود با او کاری نداشته باشید زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود با عزمی راسخ به اورشلیم رونهاد و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد آنان حرکت کردند و به ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند اما مردمان آن ده نمی‌خواستند از او پذیرایی کنند زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است وقتی یعقوب و یوحنا شاگردان او این جریان را دیدند گفتند خداوندا، آیا می‌خواهی بگوییم از آسمان آتشی ببارد و همه آنان را بسوزاند اما او برگشت و آنان را ملامت کرد و روانه دهکده دیگری شدن در بین راه مردی به او عرض کرد هر جا من به دنبال تو میایم ایسا جواب داد روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن بیارآمد عیسی به شخص دیگری فرمود با من بیا اما او جواب داد ای آقا بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم ایسا فرمود، بگذار مردگان مردگان خود را به خواب بسارن، تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نموند. شخص دیگری گفت، ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه به اول با خانواده هم خداحافظی کنم. ایسا به او فرمود، کسی که مشغول شخص زدن باشد و به عقب نگاه کند، لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت